قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه هارام گرفت بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت سلام شبتون بخیر یکی دو روز پیش روز بزرگداشت خیام بود خیلی شخصیت عجیب و تأثیرگذاری خیام میشه مدتها در موردش صحبت کرد ولی الان من نه قصدش دارم نه پس ذهنم اندازه کافی چیزی یادمه که در مورد خیام بگم فقط توی قسمت قبلی اشاره کردم که تقویمی که ما الان توی ایران استفاده میکنیم تقریبا همون تقویمی که خیام به اسم تقویم جلالی تدوین کرده بوده و اینم معروفه که سربازای انگلیسی توی جنگ جهانی اول یا شایدم دوم شایدم بیفتش توی سنگراشون برای حفظ روحی روایت خیام میخوندن حالا خیام فعلا بذاریم کنار 25 و پنج اردی روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی بود. دوست من برای من یه پیامی رو فوروارد کرد که آره یه برنامه بزرگ داشتی توی این روز یه جایی دارم برگزار میکن. میخوای بریم؟ من هم گفتم که چرا که نه. خیلی توقع زیادی نداشتم ولی پاشدیم رفتیم یه جایی اینو برگزار کرده بود به نام انجمن ایران فرهنگی که اسم خیلی بامزه و جالبی داره منظورشون از ایران فرهنگی اون ناحیهایه که فرهنگشون ایرانیه لزوما توی مرزهای امروزی ایران نیست ولی فرهنگشون ایرانیه. به طور خاص میشه ایران و افغانستان و تاجیکستان. خصوصا به نظر میاد که ها هیچ عبایی از این ندارن که خودشونو ایرانی بدونند. برنامه‌ای جالبی بود. دو تا که اجرای نمایش بر اساس شاهنامه بود. و با نقالی. یه دونهم یه نمایشه تک نفره و قول گفتنی وان منشو بود که یه آقایی اجرا کرد که خیلی هم نمایش تأثیرگذاری بود و خیلی خوب اجرا کرد. واقعا نظر آدمو جلب میکرد. و ای دو سه نفری هم اومدن یه سخن داشتند. یکی از سخنرانای آقایی بود به نام دکتر شیردوست که من آشده نبودم باش اصلا نمیشناختم ولی خیلی آدم جالبی بود از حرف خودش به نظر می که مدتی سفیر ایران توی تاجیکستان بوده که اونجا سری فعالیت های فرهنگی هم داشته مثلا یه کتابی به من داد که در مورد تأثیر شاهنامه فردوسی روی یکی از اندیشمندان خیلی بزرگ روس بود روسیه تزاری که من اسم شایدان یادم نمیاد ولی توی توضیحات پادکست می آره برای خلاصه این که یه دانشمندی اونجا این کتابو نوشته بود و به هم خط خودشون نوشته بودن نگه شر دوستم میاد و برش میگردونه به الفبای فارسی و چاپش میکنه اینجا که خیلی هم کتاب جالبی به نظر می رسید من خیلی دوست دارم بخونمش ویسیر کارهای دیگه هم گفت کرده که از جملهش همین اضافه کردن یه روزی به نام فردوسی توی تقویم ایران بوده که گفت چهار ساله اضافه شده و گفت که قبلشم مثلا روز شعر فارسیو به تقویم اضافه کرده بوده که روزشم روز وفات شهریار انتخاب کرده که خیلی انتخاب قابل دفاعیه از اونجاد که شهریار هم خیلی شناخته شده است هم تقریبا همیه شعر ازش میدونن همین که هم شاعر به زبان آذری خیلی خوبیه هم شاعره به زبان فارسی خیلی خوبیه که خب خودش یه نکته مثبتیه یه جوری جامعه تر میشه. به طور کل خیلی برنامه خوبی بود و من با توقع خیلی کمتری رفته بودم اون، جایی هم که این برگزار کرده بود جای جالبی بود من تابلوی اعلانت شدیدم دیدم که برنامه جالبی دارند دیدم که یه روز در هفته شاهنامه خانی دارن بعد همون روز تاریخ بیحقی خانی دارن و یه روزم نظامی خانی داشتن و دیگه چی آن یه روزم استور خانی داشتن که داشتن اون موقع اصطوره گلگمش رو میخوندن کلن خیلی جای جالبی به نظر میرسید حالا اصلا چرا من رفتم به بزرگداشت فردوسی اگه شیش ماه پیش بود احتمالا نمیرفتم حقیقتش فکر کنم منشه و شروع داستان از همین پادکست باشه خب من قبل ترف کنم گفتم که من از همون لحظه ای که با مفهوم پادکست آشنا شدم دلم میخواسته که پادکست داشته باشم و وقتی بعد از مثلا یازده سال شروع کردم به صورت جدی تلاش کردم برای این کار متوجه شدم که نمیتونم درست فارسی حرف بزنم عباس مدت زیادی بوده که کتاب نخونده بودم حتی تلویزیون فارسی نگاه نکرده بودم دیگه به نظر می‌رسید رو این زبون هیچ تسلطی ندارم بعد به این نتیجه رسیدم که اگر واقعا میخوام این کار انجام بدم باید اینو درستش کنم و راه حلی که برای این انتخاب کردم این بود که یه سری متن فارسی اصیل بخونم از اون طرف مدت زیادی بود که توی اپلیکیشن پادکستم پادکست فردوسی خانی رو دنبال کرده بودم ولی هنوز بهش گوش نده بودم یه روز گفتم که فرصت خوبیه که به این گوش بدم با یه تیردونشون زدم هم دارم یه پادکست فارسی خوب میشنوم، هم دارم شاهنامه گوش میدم. همین که شاهنامه فارسی خیلی اصیلیه و باید کمک بکنه به بازیابی زبان از دست رفته ای من. بعد شروع کردم به گوش کردم و دیدم که چقدر جذابه. و یه خیلی برام عجیب بود چون آشنایی که من با شاهنامه داشتم صرفا از درس ادبیات مدرسه بود و توی درس ادبیات فارسی با اون نمونه هایی که از شاهنامه برای ما آورده بودند تصوری که من از شاهنامه داشتم یه متن حوصله سرور ادبی بود که توش اوج اتفاقات حیجانانگیزی که میفته دعوا کردن دوتا پهلوان با همه که هیچ جذابیتی برام نداشت ولی همین چند قسمت که به اون پادکست فردوسی خانی گوش دادم دیدم که نه کلا تصور من اشتباه بوده این در وهله اول یه درام خیلی خیلی جذابه بعد یه چیز ادبیه همیشه من شاهنامه و فردوسی و به این میشناختم که عجم زنده کرده به این پارسی. و فکر کردم که تنها چیز مهمش این فارسی بودنشه و اینکه تونسته زبون رو نگه داره. چیزی که بهش فکر نکرده بودم این بود که چرا باید این کتاب زبون فارسی رو نگه داره؟ چجوری بوده که مردم این کتابو میخوندن و بغلم نرسیده بود که شاید این خیلی جذاب بوده که اینقدر مردم تو طول این مدت خوندنش نشستن پای نقالی گوش دادنش حالا این به کنار فعلا تا آخر داستان بیژن و منیژه گوش دادن. و اصلا تصویر و دراما عجیب غریبه. مثلا سر داستان رودابه و زال واقعا من روی پام بند نمی شده. به طرز خیلی عجیبی داستان جالب و هیجان انگیز و با درام زیاد و از اون طرف عاشقانه و از اون طرف خنده دار و عجیب و از یه طرف هم شخصیت عجیب غریب با درگیری های عجیب غریب واقعا فوقلاده بود داستان یا مثلا خود همین داستان بیژن و منیجه یه جاهایی مسخره و خنده داره یه جایی. هجان انگیزه همه اون انصور که مثلا یه نویسنده سریال تلویزیونی تلاش میکنه بهشون برسه رو داستانش داره و خیلی قابل درکه که چرا داستان شاهنامه اینقدر جذابه چون که اگه نگاه کنیم خیلی از این داستانا شاید بیش از هزار سال قبل از اینکه، شاهنامه سروده بشه درست شدن توی این مدت داستانایی که بندازه این داستانا جالب نبودن آروم آروم حذف شدن از بین رفتن یه جورایی داستانا انتخاب طبیعی شدن و یه چیزایی هم توی طول این مدت بهشون اضافه و کم شده تا جذاب تر بشن بعد اینا رو همه رو جمع کردن توی یک کتاب به نام شاهنامه ابومانسوري بعدشم فردوسی که خیلی شاعر قابلیه اینا رو کرده شعر. حالا من گفتم که فقط ادبیات نیست ولی واقعاً ادبیات جالبیم داره. و بعد میبینی که چقدر تأثیر گذار بوده یکی از تأثیراش که خب همین. زبون فارسیه که خیلی زیاد این زبونی که ما داریم حرف میزنیم به شبیه به خاطر اینکه ما داریم شبیه اون زبون حرف میزنیم. ما بازگشتی داشتیم به زبان حافظ و سعدی که اونا خودشون زبونشون رو شبیه زبون شاهنامه درست کردن. و این این نعمت عجیبیه که ما داریم فقط به نظر مثل یعنی ما جزو و معدود آدم هستیم که داریم. خیلی تعداد زبون که بتونن نوشته ای از هزار سال پیش خودشون رو به راحتی به کمه. هیچ زبونی اینقدر عمرش زیاد نیست به جز مثلا عربی. مثلا زبان لاتین از بین رفته زبان امپراتوری روم و آثارش توی یه سری زبان مثل ایتالیایی و اسپانیایی و اینا مونده ولی اونجوری نیست یا یونانی باستان از بین رفته ولی مثلا یه زبانوی مثل عربی و فارسی یه مدت خیلی زیادی تغییر آنچنانی نکردن یعنی تغییر که کردن ولی مردمشون با نگه داشتن یه مت یه مرجعی درست کردن و و جور زبان مرجعی که برای خودشون نگه داشتن تاثیر دیگه ای هم که شاهنامه داشته به نظر میاد که رد توی همه آثار ادبی بعدش هست نمونش همون روبایی که من اول از خیام خوندم اون روبایی رو برای این انتخاب کرده بودم که اینجا این تأثیر شاهنامه رو بگم تو اون روبایی خیام از قصر رو جام جمشید میگه و از بهرام گور میگه داستان این آدم ها رو فردوسی به گوشه خیام رسونده بوده. البته اینجوری نیست که تنها منبع این داستان ها شاهنامه فردوسی باشه. خیلی کتاب های دیگر امینا رو میگفتن و شاید اگر فردوسی این کتاب رو به نظم نمینوشت ما الان کتاب شاهنامه عبو رو به نصر داشتیم. یا مثلا شاید شاهنامه بزرگ ابن مقفع میموند. یا مثلا همین تاریخ بلعمی که تو قسمت قبل معرفیش کردم اونم داستانای شاههای ایرانی رو داره. با این درام و جزئیات این شاید نه ولی باز اونم داره. و بالاخره یه چیزی به ما میرسید. ولی بعید میدونم اینقدر همه گیر می شد فکر می کنم این شیرین زبونی فردوسی بی تأثیر نبوده توی فراگیر شدن این داستان ها نویسنده و شاعر دیگه هم همینجور خیلی زیاد از داستانه شاهنامه برای توصیف و ارجاهای خودشون استفاده میکنن. یه سری ضرب المثل داریم که از داستانهای شاهنامه اومده. مثل مثلا نوشدارو بعد از مرگ سهراب. و یه تعداد هم من تا الان ضرب المثل شنیدم که فردوسی استفاده کرده و ما هنوزم استفاده میکنیم. ولی یادم نمیاد چی و خیلی برام عجیبه که چرا همون موقع که شنیدم ننوشتم. ولی هر دفعه که شنیدم برام خیلی جالب بوده و تعجب کردم که زبان اگر مونده حالا یه چیزی کلمات اگر مونده گرامر شگی مونده دستور زبان شگی مونده یه چیزی ولی اصطلاحات انوز خیلی جالبه. خب دیگه فکر کنم بزرگ داشته فردوسی بسته. از زبط قسمت پیش تا الان خیلی وقت گذشته چون که من نمیتونستم خودم رو جمع کنم که چیزی زبط کنم. یکی از دلایلش با یه پارادوکس جالبی شاهنامه بود چون که من در مقابل سخنوری فردوسی واقعا دهنم بسته میشد یعنی اینکه به فارسی تسلط کافی ندارم حتی بیشتر از قبل مانعم میشد دلم نمی اومد بعدشم موقعی که دیگه عزبم رو جذب میکردم میگفتم که امشب باید حتما چیزی زبط کنم یه کاری میکنم هر دفعه یه مقداری از یکی قسمت قسمتهای قبلی و قبل از زبط گوش میکنم که یه ذر حال و هوای همون رو بگیرم و خیلی متفاوت نشه لحنم و حال و هوام که امشب این کارو نکردم اتفاقاً برحال، یه چند دقیقه از یکی قسمت قبلی رو گوش میکنم که یه ذره آمادشم برای صحبت کردن. بعد تقریبا هر دفعه وقتی شروع میکردم این کارو خودم خوابم میبرد. و صبح چشم باز میکردم، میدیدم که هدفونم روی بالشته، گوشیم زیرمه و میکروفونم وسط اتاقه. این هم یه جورایی بامنزده است که پادکست خودم نمیذاش که پادکستمو رو زبط کنه. ولی خوب یه جورایی هم خود موفقیته. حالا از دلایل تأخیر زبط بگذاریم. بگم که چه اتفاقاتی توی مدت افتاد. نزدیکترینش که همون همایش بزرگ داشته فردوسی بود که مفصل تعریف کردم. ولی دورترین اتفاق مهمی که افتاد این بود که ما رفته بودیم باغ کتاب اونجا با یکی از فروشنده آشنا شدیم که یه چندتام کتاب کرد تو پاچمون بعد این مدتی فکر کنم یکی دو هفته این دوست من که باش رفته بودم به من زنگ زد گفت که می باغ کتاب انبار گردونی بنا چیز بودم که خوب چقدر حقوق میدن نمیدونم چطوری کارش اینا و اولش اصلا مایل نبودم برم چون خیلی بیگاری بود ولی این دوست من منو خیلی خوب میشناخت و میدونست چجوری رعیمون بزنه گفت که بیا یه تجربه جدیدی تا حالا همچین کاری نکردی منم دیدم که راست میگه واقعا انبار گردونی فروشگاه کتاب بریم ببینیم جوریه سه روزم هست کلن خیلی تصمیم بزرگی نیست فوقش سه روز بیگاریه یا اصلا خوش نمیگذره یا هرچی پاشدیم رفتیم و خیلی هم اتفاقا سه روز جالبی بود با چندین نفر آدم خیلی جالب باش نشدیم و دوستان جدیدمون شدن و متوجه شدیم که آدمهایی که توی کتاب فروشی کار میکنن احتمالین که آدم جالب و فریخته ای باشن زیاده. حقوقی هم که بابتش بهمون دادن اتفاقم بیشتر از اون چیزی بود که گفته بودن و منم هم تقریبا همش رو همونجا و... نمایشگاه کتاب خرج کردم پنج تا کتاب گرفتم که داراب نامن که دو جلدش داراب است که یه کاتبی به نام ترسوسی نوشته که یه چیزی بوده که نقالا اجرا میکردن. و قرن شیشم نوشتتش سه جلدش هم فیروز شاه است که دو جلدش به اسم دارابنامه چاپ شده یه جلدش به نام فیروز نامه. اون چهار جلدی که اسمشون دارابنامه است رو مرحوم زبیه الله صفا تصیح کرده اون آخری هم عمرش قد نداده یه نفر دیگهای تصیح کرده و یه انتشار دیگه چاپش کرد. کرده قبل از اینکه شروع کنم زبست داشتم اولین جلد اون داراب نامه ای که قرن ششم نوشته شده رو میخوندم. خیلی داستان جالبیه و باز هم این داستانی که داره تعریف میکنن داستان داراب آخرین پادشاه کیانی که میشه معادل داریوش سوم هخامنشی داستان اون رو تعریف میکنه که باز هم داستانش توی شاهنامه هم هست فقط این داستانی که اینجا داره تعریف میکنه شاخ و برگاش بیشتر حالا معلوم نیست که اینا از دوران قبل از اسلام مونده سینه به سینه اومده رسیده به اینا یا اینکه همون داستان شاهنامه رو مثلا ورداشتن بستش دادن با توجه به ای که زبیح الله صفو نوشته احتمال این که خیلی از جزئیات این داستان مال قبل از اسلام باشه زیاده. آره خلاصه که به خاطر درست فارسی حرف زدن من کشیده شدم به ادبیات کهن و به خاطر داستانای خوبش توش گیر کردم. توی مقدمه همین کتاب دارابنامه داستان این کتاب رو مقایسه کرده بود با داستان بقیه کتاب فارسی از جمله اسکندرنامه ها و تاریخ بلعمی که من همین اول امسال باش آشنا شدم و از اون موقع دارم میخونمش اونم خیلی جالبه و شاهنامه و یه کتاب دیگه ای که من آشنا نبودم باش. نوشته آثار الباقیه تعلیف عبوریحان بیرونی. و من گفتم که این چیه که من تا حالا نشنیدم اینا. رفتم یه سرچ کردم در مورد کلن عبوریحان بیرونی و کتاباشو این کتاب به صورت خاص کتاب خیلی خیلی عجیبیه. عنوان کامل کتاب اینه: آثار الباقیه من القرون الخاليه. یعنی آثاری که باقی موندن از قرون گذشته. بعد هر چیزی که از قرون گذشته باقی مونده رو اونجا جمع کرده. که من دنبال یکیش که خیلی زیاد بودم. که سیستم های تقویم قدیمی برای ملت های مختلف اونجا گذاشته من فکر میکنم که خیلی جادبی که آدم بدون چجوری تقویم نگه میداشتن قدیم قبل از ماها یه قسمت دیگش هم اسم پادشاه های مختلف بود مثلا پادشاهان قبطی یعنی فرعونها، ها پادشاهان فارس پادشاهان روم پادشاهان بطلمی مثلا که میشن جانشینان اسکندر توی مصر و چیزای دیگه که خیلی اطلاعاتی که اونجا بود واقعا العاده بود برای تاریخ میتونه خیلی با ارزش باشه و من دیدم که همی سال 92 برای بار چندون به فارسی ترجمه شده و خیلی ترجمه دقیق تری بود و نش رو منتشر کرده بود من هر جو گشتم هیچ جا این کتاب برای فروش نداشت ولی توی گوگل بوکس پیریویوش بود و به نظر می اومد که کل کتاب توی پیریویو هست من نفهمدم که چجوری داستان ولی شادی اشتباهی کردن اجازه انتشار کلشو دادن یه قسمت خوندم واقعا جالب بود مثلا لیست پادشاه های میان رودانو که داشت سکان پادشاهان اکدی اگه اشتباه نکنم که مثلا پادشاه معروفش میشه بختن اثر چند تا پایین ترش بود داریوش مادی و بعدش کروش و من اصلا نمیدونستم که توی منابع فارسی قدیمی اصلا اسم کوروش هست. ولی به عنوان پادشاه میان رودان اونجا بود. بعد از اینکه بابلو فتح میکنه. حال نمیدونم که توی پادشاهان ایرانی هم بود اسمش یا نه. بعید میدونم احتمالا اونجا اسمش کیخسروه. این کوروش هم خیلی شخصیت جالبیه. ما هرچی ازش میدونیم از منابع غربی ایرانه. خصوصا یونانیا و یه مقداری هم بابلی ها. داستانی که ارودت در مورد کوروش میگه خیلی جالبه. میگه که میگه یه پادشاه ماد دخترش یه پادشاه پارت. بعد یه شب یه خوابی میبینه که دخترش و واس کرده از توی دخترش یه گیاه روندهی میاد بیرون و کل دنیا رو میگیره. بعد میترسه و خوابگزارا رو میاره و میگن که دخترتی بچهی به دنیا میاره که کل دنیا رو فتح میکنه. سر همین قضیه میترسه و... دستور میده که پسر دخترشو سربنیست کنن بعد این پسر رو میخوان ببرن سربنیست کنن که یه چوپانی این بچه رو میگیره و بچه مرده خودش رو تحویل میده و این بچه رو بزرگ می‌کنن و بعد که بزرگ میشه نشان پادشاهی و توش میتونن ببینن و یه اتفاقاتی میفته و پادشاه میشه و همون پدر بزرگی هم که این خوابو گرفته بوده رو و میگیره و تمام یه امپراتوری تشکیل میده. از اون طرف توی شاهنامه وقتی داشت داستان کی خسرو رو تعریف می‌کرد خیلی عجیب این داستان تشابه داره. داستان کی خسرو این که پسر کیکاوس سیاوش از دستش فرار میکنه میره توران که دشمن ایرانه میره اونجا پناهندگی سیاسی میگیره و و افراسیاب دختر خودش رو به سیاوش میده افراسیاب یه خوابی میبینه که تفسیرش رو بهش میگن که از دخترت یه پسری به دنیا میاد که تو رو میکشه و حکومت تو میگیره بخاطر همینم افراسیاب بعد از اینکه که رو میگه که دخترم همون قبل بزنین تا بچه که توی شکمشه بیفته. بعدی هم فرمیاد رعیشو میزن و میگه ولش کن دختر خودتو تو کاری نداشته باش. بذار بچه که به دنیا اومد بچه رو بکش. به این امید که تا اون موقع عقلش جاش بیاد. بعد که بچه به دنیا میاد افراسیاب میگه که نه باید بچه رو بکشیم و دوباره همون داستانی که اونجا بود پیش میاد. بچه یه چوب پانی میگیره بزرگش میکنه. بعدم که بزرگ میشه همه فر پادشاه توش میتونن ببینن. خودش برای خودش با گوسفند و چوب تیر کمون درست میکنه و تیر اندازی یاد میگیره و میره به شکار پلنگ و اینا. بعدم از ایران یه گروهی میان میدوزدنش میبرنش میکننش پادشا و بعدش هم حمله میکنه و تورانو بیچاره میکنه و افراسی ها و آخرش میکشه. شباهت این دوتا داستان به هم خیلی بیشتر از اون چیزیه که آدم بگی که اتفاقیه ولی خب پدر بزرگ این دوتا تو این دوتا داستان از دو جای مختلفند ایکشون از شرق حکومت پارتاس ایکشون از غرب حکومت پارتاس. نمیدونم جالبه ولی آره اینم از داستانی که با گردانی شروع شد و به که خسرو خط شد مناسبت دیگه این مدتم نماشگاه کتاب تهران بود که من مثل هر سال رفتم که یه سر به قسمت خارجیش بزنم چون که اونا یه ذره سخت ترگیر میاد مواقع دیگه سال یه جا جمع نیست برقیه شما از کتاب آتیه سطح شهرم میشه خرید. اونجا ایزار گشتم، خیلی چیزی که قیمتشی جوری باشه که چشام بگیر و حاضر باشم بخرم نبود. بعد گفتم که یه سرم برم توی عربیا، من ببینم هم چه خبره. توی انگلیسی که خبری نبود. بعد که یه ذره نگاه کردم دیدم که شاید یه چیزی که به درد منم بخورم باشه یه چیزی بگیرم اینجا. گرفه نگاه کردم و اینا یه سری کتاب آموزش زبان عربی و اینا بود. بعد دیدم که یه گرفه هست که غیر از کتاب دینی چیزای دیگه هم داره. از گرفه دارش پرسیدم که کتاب اعراب گذاری شده چیزی داری من نفه هیچی یادم نمیاد. بایدی چیزی باش که اعراب داشته باشه که من یه ذره بخونم را بیفتم بعد سر کتابم کتاب نشوند گفت شاید اینا مثلا چیزی داشته باشن و اینا. بعد پرسیدم که از ابن مقفع کتاب دارین؟ بعد گفت آره کل لوده من که لودم نر داره یکیشو اجازه گرفتم این پلاستیک روشو باز کردم توشو ببینم دیدم اتفاقا ارابگذاری هم داره و ابن مقفع نکتش که از بزرگترین نویسنده عرب محسوب میشه یکی از کتابهایی که ازش مونده همین که لودم نست از پهلوی ترجمه میکنه به عربی که خود داستان که لودم نه هم خیلی بامزده است که از کجا اومده ابن مقفت توی مقدمش میگه که در واقع انوشی روان یه جور جاسوسی و میفرسته هند که برو علمای اینا رو جمع کن بیار اونم میره و یکی از چیزایی که میاره با خودش همین داستانایی که لودم که خیلی داستان های موزیه و میاره و به پهلوی ترجمه میکنه و شاهم استفاده میکنه بعد اون غرفدار عزیزی که اونجا بود گفت که متنای پهلوی دیگه هم هست دا. بعد من پرسیدم که من خیلی در جریان نیستم فقط یه دونه شونو میدونم اینا گفت که نه هست ترجمه هم شده به فارسی یکی شم اسمش رو گفت گفت مثلا اینم هست و من برام این اطلاعات جدیدی بود یه اسم اون کتاب سرچ کردم دیدم که دیدم که یه انتشاراتی اونجا داره شماره غرفهش رو نوشته بود رفتم اونجا دیدم که اون کتابی که اون غرفه دار معرفی کرده بودو و تموم کرده بودن نداشتن ولی کتاب های دیگه پهلوی داشتن مثل دین پنجم و یادگار زریران و کتاب آموزش زبان پهلوی کتاب دیگه هم که دیدم جالب بود اسمش بود از گذشته های ایران مجموعه مقالات جاله آموزگار که من جاله آموزگارم نمیشناختم فهرست مقاله رو که دیدم فهمدم که از اون کتابهایی که بخوند خصوصا یه چیزیش که خیلی چشمم اونجا گرفت چیزی بود که یه مدتی بود داشتم بهش فکر میکردم که از قسمت قبل همین پادکست ذهن من به خوش مشغول کرده بود اونم گاه شماری باستانی ایرانی بود که تقویمشون اون موقع چهجوری بوده من یه ذره لیست مقاله رو این ورنور کردم و مثلا یه صفحهش رو رندوم باز کردم خوندم دیدم که واقعا کتاب جالبی خریدمش بعد که اومدم خونه همون مقاله گاه شمای رو خوندم دیدم خیلی خوبه یه جدیش خوندم باز دیدم خیلی خوبه فرداش رفتم اون یکی کتابش هم خریدم دو تا کتاب مجموعه مقالات داشت جفتش رو خریدم حالا از این به بعد احتمالا یه عالمه چیزای جالب از اون توی یاد میگیرم درز میکنه توی این قسمت های پادکست مثلا همون قسمت گاه شماری خیلی جالبی که داشت این بود که مثل خط ایرانی این تقویم ایرانی هم به نظر میاد که از, از همون حکومت های میان رودان اومده باشه و یه ذره یافته همون تقویم بابلی باشه. احتمالا میدونید که طول هر سال تقریبا 365 روز به علاوه یک چهارم روزه. به خاطر همینه که ما سالهای 365 روزه داریم و هر چهار سال یه بار یه روز کبیسه داریم که که اون یک چهارومایی که حساب نکردیم و جبران کنه. تو این مقاله میگه که توی تقویم حق سال از دوازده ماه سی روزه تشکیل می شده. که جمعش میشه شه 360 روز و پ روز و یک چهارم میمونه برای همین هر 6 سال یک بار یک ماه کامل سی روزه رو کبیسه می گرفتن یعنی سالشون به ج اینکه 12 ماه بشه 13 ماه می شده. توی این روش یه سری خورده دی دیگر میمونه که توی تنوبای بیشتر با کبیسه گیری دیگه درستش میکردن که خیلی روش جالبیه خصوصا اینکه که ماه ها و کسی که میخواد از این تقویم استفاده کنه لازم نیست چیز بیشتری و یاد بگیره یا حفظ کنه تو ادامهش هم گفته که نه تا از این ماه رو ما اسمشون رو از کتیبه های اخامنشی اخ میدونیم و اسمشونو گفته و تحلیل کرده و اینجور چیزا. خب دیگه من از باز خوردم بگم و جمعش کنیم بره. از شنوانده با فار آشنه شدم که عکاسه لینک اکانت اینستاگرامشو میذارم، برید عکسشو ببینید. احتمالش سیاده که خوشتون بیاد. که توی کست باکس برای من نوشته بود که ایکاش کاش با هم دوست بودیم. منم گفتم که خب دوست باشیم. من اصلا این پادکست رو جایی برای صحبت با دوستان میدونم. خصوصا اینکه تعدادی از دوستام رو دیگه نمیتونم من نزدیک ببینم خارجان و در واقع من موقع ضبط تا خیلی زیادی تصور میکنم که دارم با اونو حرف میزنم قبل ضبط این قسمتم توی اینستاگرام بهش پیام دادم که اگر چیز خاصی میخوای بگی بفرست که اگه شد بتونم توی قسمت بعدی بذارم. یه سری نظرها داد که به عنوان ایده برای صحبت کردن که خیلی جالب بود من با هیچ کدومشون آشنا نبودم. که این خودش یه جور فرصت دیگه هر چقدرم دوستان بیشتر و متنوعتری داشته باشه با موضوعات بیشتری آشنا میشه و دیدش بازتر میشه و کلا خوبه دیگه خدا اینکه ممنون فرید نسیم هم توی اینستاگرام مسیج داده یجوره با مزه ای گفته که کاش با صدات مثلا نظریه‌های هاکینز یا مسائل خاص فرازمینی رو میشنیدیم ما و طبیع مثلا، چیزایی که آدم میبره تو فضا و انرژی و زندگی در لحظه و غیره. کتابم معرفی کنی خوبه به نظر من که شنونده در کل مرسی و شب بخه. حاکینزی زره برام جالب بود چون که بهش فکر کرده بودم به خاطر این که من خواهر و برادرم جفتشون فیزیک خوندن و من از بچگی توی همین حال و هوا بودم ولی الان یه مدت زیادیه که خیلی پیگیر این قضایه نبودم و خیلی یادم رفته علاوه بر اون فیزیک نوینو شاید ادهه انگشت شماری درک بکنن واقعا تعداد خیلی کمی دانشمند فقط یه درک درستی دارن که قضیه چیه بخاطر همین خیلی حوضه عجیب قریبیه یعنی من خیلی اعتماد به نفس اینکه وارد همچین چیزی بشم ندارم خود استیون هاکینز چندتا برنامه تلویزیونی خیلی خوب ساخته پیشنهاد میکنم که از زبون خودش بشنوی و تصویرهای خیلی خوبی هم داره کلا موضوع فوقلعاده جذابیه ولی من تو خودم نمیدم از پسش بر بیام ماور و طبیعم من خیلی به نظرم جذابه یعنی مثل داستان برام جذابه و کسی که به این چیزا اعتقادی نداشته باشه و بخواد در موردش حرف بزنه خیلی انتقادی میگه و اونقدر جذاب نیست اون وقت ولی یه چیزای جالبی داره که شاید بعدا در یه چیزایی گفتم ولی اونقدرم در مورد این موضوع اطلاعات ندارم که بخوام حرف خاصی بزنم خلاصه که مرسی ازت نسیم دیگه یادم نمیاد کسی که توی مدت چیزی گفته باشه به من و ممنون از هر کسی که نظر میده، گوش میده، معرفی میکنه به کسی ای سپاس گذارم. خوب راستش من خیلی از این قسمت راضی نبودم خودم. به خاطر همین میخوام با آهنگ آخری که انتخاب کردم جبرانش کنم. راستش خیلی را دستم نبود این آهنگو بذارم این ته چون یکی از بهترین آهنگایی که توی چنده داشتم و یه جورایی فکر میکردم کردم که نسوزونمش نامشم این اول ولی خب برای جبران این قسمت که منظرم خیلی خوب نبود یه آهنگ خیلی خوب میذارم که متعدل شد آهنگی که برای امشب انتخاب کردم اسمش هست میزرره می دوست که منی کلماتش به لاتین میشه رحم کن من خدا شعر این قطعه از کتاب زبور داوود علیه السلامه و آهنگشو گرگوریو علگری اگه اشتباه تلفظ نکنم توی دهه 1580 برای کلیسای کاتولیک ساخته. این قطعه یکی ای از معروف‌ترین قطعه‌های مذهبیه و توی مدت خیلی زیادی فقط سال یک بار توی واتیکان اجرا می‌شده و هیچکس حق اجرا و نسخه‌برداریش رو نداشته. تا اینکه یه روز موتسارت 14 ساله میره و اجرا رو می‌بینه. بعد از حفظ می نویستش. بعد اون نسخه پخش میشه و دیگه همه میتونن اجراش کنن و گوش کنن و تا همه که کسایی که دو تا گروه ک داشته باشن میتونن اجراش کنن. اینم یکی از شیرینی های زندگی تو قرن 20 کمه که میتونیم به موسیقی که سالی یک بار توی واتیکان اجرا میشده و هیچ جای دیگه نمیشده شنیده شو میتونیم روی دستگاهی که تو دستمون جا میشه اجرای این قطعه رو توی آکسفورد گوش کنیم شب خوش